افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه ها حتی اگر خیالی باشند باز هم در دلشان حقیقت و واقعیتی را دارند که می میتواند درس یا پیام افسانه باشد افسانه ها چه خیالی باشند چه واقعی بخشی از هویت ماندگار یک ملت هستند که ریشه در آداب و رسوم مردم آن ملت ها را دارند در این برنامه می‌خواهیم یکی از افسانه‌های کشور عزیزمان ایران را رو برایتان روایت کنیم. افسانه پادشاه و زن نیکوکار که از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده. یکی بود یکی نبود سالها پیش در کشور عزیزمون ایران پادشاهی زندگی میکرد که اهل سخاوت و بخشش بود اون هر روز به هر کدوم از همسران و فرزندانش یه سکه طلا تلا میداد و از اونا میخواست که سکه ها رو به فقرا ببخشند. میبینی ما باشه؟ حل سخاوت که باشی همیشه صدای این هم همیش شادی از خونت به گوش میرسه همینجوره سرورم خوشا به حال مردم این سرزمین که پادشاه سخابتمند می چون شما داره گمان نکنم در تمام این سرزمین کسی به بخشندگی من پیدا بشه همینطوره سرورم من فقرهای این شهر رو زیر پر خودم میگیرم تا همیشه از شاه مملکتشون راضی باشم مثل اینکه مقابل دروازه یک قصد خبرهایی ایستن برم آی نگهبان اونجا چه خبره؟ <متصف> یکی از فقرهای که به دم در قصر اومده ادعای داره که باعث خنده و تمسخور سایری شده چه ادعایی نبخشی <متصف> جناب پادشاه ولی ایشون ادعا میکنه که قبله عالم خیلی هم سخاوتمند نیست او میگه زنی در این کشور زندگی میکنه که از شما بخشنده کی؟ یا به گویی کرده بله گوهر با این حال، دلم میخواد اون مرد رو ببینم فورا برو اون مرد رو پیش من بیار اطاعت میشوستم <متصفيق> آی <های>. ای <متصفيق> امان از یاوهگویان سرورم امان میبینید میبینید سرورم زیادی که به این جماعت توجه کنید رویشان زیادی شود و زبانشان دراجده برای همین خواستم اون مردو از نزدیک بریم اگر نتونه ادعاشو به من ثابت کنه دمار از روزکارش در میارم تا دیگه از این گستاخی نکنه این همون مرد گستاخیه آه. که ادعا میکنه که شما خیلی هم سخاوتمند و بخشنده نیستید خب پیر مرد پوش از خودت دفاعی داری؟ من گناهی نکردم که بخوام به خاطرش از خودم دفاع کنم گناهی نکردی؟ تو به چه حقی ادعا کردی کسانی در این مملکت زندگی میکنن که از جناب پادشاه سخاوت منترن من چیزی رو که به چشم خودم دیدم برای دیگران نقل کردم همین او به چشم خودت چی دیدی؟ من در این شهر زنی رو میشناسم که وقتی فقیری به در خونش میره با ظرف به اون آب میده بعدم ظرف طلا رو به فقیر میبخشه امان از دست شما جماعت ناسپاس چطور میشه در این مملکت زنی زندگی بکنه که داراییش از من بیشتر باشه و من تا به حال اونو ندیده باشم من یاوه نگفتم سرورم بسیار خوب اگه یاوه نگفتی میخوام به دیدنش برم همین الان مانعی ای نداره فقط جسارتا اون زن فقط فقرا رو به خونش راه میده خب مشکلی نیست من هم ادعا میکنم که فقیرم کدام مرد فقیری رو میشناسین که چنین لباسای فاخری به تن داشته باشه سربرم منظورش اینی که باید لباس های جنده و مندرس به پوشید بره آه. بسیار خوب تو اینجا منتظر به من میرم و لباس های مندرس و همراه تو به دیدن اون زن میری بسیار خوب شاه لباس ژنده پوشید و همراه مرد فقیر به راه افتاد تا به خونه زن نیکوکار رسیدن در زدن مردی در رو باز کرد و پادشاه و مرد فقیر را به داخل دعوت کرد و در ظرف های طلا به اونا آب و غذا داد. پادشاه و مرد فقیر شروع کردند به خوردن آب و غذا. بعد از قضا زن کار اومد و به اونا گفت که میتونن ظرفای طلا رو ببرن و اونا رو بفروشن و با پولش امورات زندگیشون رو چیه؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنین؟ از شما خواستم این ظرفا رو بردارین و به بازار ببرین و بفروشین با فروششون میتونین مدتی آسوده زندگی کنین چطور چنین چیزی ممکنه؟ منظورتون چیه؟ من من پادشاه این سرزمینم و امروز از این مرد فقیری که کنارم نشسته وصف شما رو شنیدم. لباس مندرس بوشیدم تا به چشم خودم ببینم زنی کار در این شهر وجود داره که از من سخاوت من داره اگه میدونستم که شما پادشاهین بهتون اجازه ورود به این خونه رو نمیدادم برای همینم هم من لباس مندرس بوشیدم برای اینکه اگه چنین چیزی واقعیت داشته باشه ازت بخوام راز این همه سخاوت بخشندگی رو به من بگیر <تصفيق> بسیار خوب اعتراف میکنم منو قافل گیر کردین جناب پادشاه با این حال ازتون میخوام که ظرفتون رو ببرین و کاری به این کارا نداشته باشین امکان نداره بدون شنیدن راز این سخاوتمندی از این خونه نمیرم پی بردن به راز این سخاوت ساده نیست. سختیشو به جون میخرم. بسیار خوب. پس با من بیایید. آها. شما واقعا می‌خواید بدونین راز این بخشندگی چیه؟ حالا دونستن این راز یه شرط داره. چه شرطی؟ اگه میخواین سر از راز کار من در بیارین باید به شهری بریم که اون طرف رودخونه است در اون شهر مسجدی هست و در اون مسجد جوانی نشسته کار اون جوان اینه که هر روز کنار حوز بشینه و از اونجا زول بزنه به کبوتری که تا تنگ غروب کنار حوز میشینه و بعدش به خونش برمیگرده. خب اگه تونستین راز اون جوانو بشنوین و اونو به من بگین منم راز این همه رو به شما میگم رازی بیارین و رازی بشنوی. بسیار خوب همین الان به اون شهر میرم و با راز مرد جوان بردیگردام شاه به شهری رفت که پشت رودخونه بود بعدم راهی مسجد شد و مرد جوان رو پیدا کرد همونطوری که زن گفته بود مرد جوان یه گوشه نشسته بود و زل زده بود به کبوتری که نزدیکی حوض نشسته بود سلام مرد جوان سلام یه ساعت دارم بهتون نگاه میکنم برام عجیبه که زل زدی به اون کبوترو و چشم ازش برد نمیداری زندگی همینه <تصفيق> مگه میشه یه نفر زندگیش این باشه که از صبح شب بشینه یه جا به کبوتر زل بزنه <تصفيق> چرا نمیشه مگه میشه یه نفر یه ساعت بشینه و خیره بشه به یه جوونی که به یه کبوتر زل زده منظورت منم آره دیگه دو دنیا هر اتفاقی میتونه بیفته خب پس هیچ چیز عجیب نیست خب شاید حق با تو باشه اما خیلی دلم میخواد بدونم که چرا چشم از اون کبوتر برد نمیده چرا برات مهمه؟ مهمه دیگه دلم میخواد سر از راز این کار در بیارم واقعا؟ باور کن راست میگم خیلی دلم میخواد بدونم چه رمز و رازی تو خیره شدن به این چبوتره باشه ات میگه اما یه شرط داره چه شرطی؟ شرطش اینه که به شهری که پشت اون کوهاست بری و خود تو به پیرمردی مردی برسونی که اسب تکیدهی داره و هر روز از سپیده صبح تا تنگ غروب با اون اسب بار میکشه و شب که میشه شروع میکنه به شلاق زدن اسب و بعدم اونو به یه طویله میبره آخا اون چرا باید همچین کاری بکنه؟ نمیدونم اگه میدونستم دیگه راز نبود اگه بری اون پیره رو پیدا کنی و رازشو ازش بپرسی منم راز خیره شدن به اون کبوتر رو بهت میگم باشه. <تصفيق> فقط امیدوارم بعد از این که از پیش پیرمرد برگشتم به قولت عمل کنی باشه باشه باشه میدم شاه نشانی پیرمرد و از مرد جوان گرفت و راهی شهر پشت کوه شد وقتی به شهر رسید سراغ پیرمرد و از مردم شهر گرفت و پیرمرد و پیدا کرد و وانمود کرد که مسافر و کسی و در اون شهر نداره پیرمردم اونو به خونش دعوت کرد ازش خواست شبو در منزلش بمونه یه مسافر چرا غذا نمیخوری؟ میل ندارم تو گفتی که مسافری و تو این شهر کسی رو نداری و گرست نید آره اما نمیخوام غذا بخورم چرا؟ اه. برای اینکه به حرفت گوش بدم و غذا بخورم یه شرط دارم <تصفيق> چه شرطی؟ من دیدم که با عصبت چطور برخورد کردی اون حیبون خیلی ناتوانه به سختی میتونه راه بره. با چشمام دیدم که از اون حیوان زبون بسته کلی کار کشیدی و بعدم کتکش زدی آه بهتر این رازو فراموش کنی مرد مسافر گفتنش تنم و میلرزونه آه نه پیرمرد نه این راز خیلی ذهن منو مشغول کرده گوش من به این حرفا کار نیست یا اون رازو به من میگی یا لب به این قضا نمیزنم و همین الان از خونت میرم آه باشه باشه شام تو که خوردی؟ بهت میگم اون راست چیه؟ نه نه نه اول راز تو به کبوت شان میگه. از دست تو. باشه. باشه میگم. سال ها پیش من زنی داشتم که خیلی عصبی و بد دهن بود. هرچقدر بهش محبت میکردم در عوض اون به من بدی میکرد نمک نشناس بود، قدر نشناس بود. پیش هر کس و ناکسی منو سکه یه پول میکرد، تا اینکه یه روز زنم به خودش اومد بهم گفت که از کارش پشیمونه و آرزو میکنه که یه اسب بشه دلم به حالی سوخت با اینکه از دستش ناراحت بودم اما بهش گفتم که بخشیدمش اما اون زیر بار نرفت و گفت که آرزو میکنه تبدیل به یه اسب بشه و بتونه انقدر به من خدمت کنه تا من از ته دل ببخشمش خب هیچی امین از اون موقع به بعد اون زن تبدیل به یه اسب رام شد آه. یعنی یعنی این اسب در اصل همسرته؟ بله پس... چطور دلت میاد اونجوری شلاقش بزنید؟ باور کنید اون شلاق ها هیچ دردی ندارم. یعنی دلم نمیاد که بهش شلاق بزنم اون ضربه ها فقط صدا داره من به نوازش کردن بهش ضربه میزنم من مرد سنگدلی نیستم با اینکه اون زن خیلی به بدی کرد با اینکه زندگی منو سیاه کرد اما اما من از ته دل بخشیدمش عجب حکایتی آره, آره. حکایت تلخیه آنم نمیتونم ازش دل بکنم خب زنمه دیگه میدونم با اینکه اسب شده اما همه چیز حالیشه میدونه که چی به چیه منو میشناسه و خوب میدونه که قدیما چقدر منو عذیت کرده خدا از سر تقصیراتش بگذاره انشالله خوب اینو از راز من دیگه چی میخوای بشنوی؟ هیچی ازت ممنونم که به من اعتماد کردی و رازتو به بهم گفتی الان میخوای غذا تو بخوری یا نه؟ آره, آره میخورم یه آ... چیز دیگه چی؟ من دیگه پیر شدم و آفتاب لبه بومم. نگه داشتن این از دیگه در توام. اگه بخوای، اگه بخوای میتونم این اسب رو به تو بدم. ای بابا این این اسب عصای دستته چرا میخوای اونو به من بدی؟ نه مرد مسافر نه. اون اسب زبون بسته دیگه نای کار کردن نداره. منم دیگه رمقی برای کار کردن ندارم اون از دیگه به کار من نمیاد تو مرد قابل اعتمادی هستی مسافری و مرکبی نداری او رو با خودت ببر اون قدری جون داره که تو رو به مقصدت برسونه. بعد هم یه جوری ازش مراقبت کن که ازیت نشه باشه پیر مردم. دست درد نکنه حالا <مم> <مش> دیگه وقتش هم خوردنه بسم الله ده شو اسو از پیرمرد گرفت و به شهری برد که مرد جوان در مسجد نشسته بود و به کبوتر زل زده بود رفت تا راز پیر مرد رو به اون بگه تمام راه به این فکر میکرد که میتونه دوباره مرد جوانو ببینه و رازش رو ازش بپرسه یا نه تا اینکه بعد از چند روز به اون شهر رسید و یه روز رفت مسجد و اون جوان دید که همچنان گوشه حیات مسجد نشسته و به کبوتر زل زده بود بعد هم شروع کرد به تعریف کردن راز پیرمرد خب مرد و جوان اینم از راز اون پیر مرد آه. دیگه چی میخوای بشنوی تا بهت بگم و تو راز خودتو برام تعریف کنید درسته درسته این راز راز پیرمرده فقط یه سوال این عصبی که به هاش اومدی عصب پیرمرده آره آره عصب اونه آه. گفتی که طبان نداره ازش نگهداری کنه و همین خاطرم اونو داد به من تفلک زن وی نوا آه. اون زن چوب کارهای خودشو میخوره تاوان خطاهای گذشتشو داره بس میده بخواست خودش به این روز افتاد آره کاش همه ی یه روز متوجه کارای اشتباهشون بشن کاش خب من بی منتظرم تا راز تورم بشنوم نه من هنوزم میگم که شنیدن اون راز دردیو و دوا نمیکنه برای تو شاید دردی دوا نکنه ولی برای من چرا تو من قول دادی که اگه سر از راز پیرمرد درآوردم وردم رازتو به هم بگی آره آره قول دادم قول دادم الانم بهت میگم که چرا ساعتها به این کبوتر خیره میشن حقیقتش حقیقتش اینه که من از وقتی که خودم رو میشناسم به این مسجد میام و برای کبوترهای مسجد دونه میپاشم هیچ قصدی هم نداشتم فقط دلم میخواست براشون دونه بپاشم تا که یه روز یکی از کبوترها اومد پیشم و به زبون آدمیزاد زاد با هم حرف زد به بهت چی گفت؟ گفت تو چفون مؤمن و با خدایی هستی میبینم ات که هر روز به مسجد میای و برای ما کبوترها دونه میپاشیم خب بعد از اینکه که کلی ازم تعریف کرد به من گفت که به هم علاقه داره و دل شده یعنی یعنی یه کبوتر عاشقت شده بود آره خودم از شنیدن این حرف تعجب کردم از این که یه کبوتر چطور میتونه عاشق یه آدم بشه خب خب بعد از اینکه به من گفت بهم به منده گفت که اون در از کبوتر نیست بلکه دختریه که در جلد یه کبوتر رفته بعدم تبدیل به یه دختر جوان شد که من با دیدنش یک دل صد دل آشق شدم احجاب خب وقتی تبدیل به آدم ایزاد شد ازش قاسکاری کردم گفت به یه شرط حاضره با من ازدواج کنه چه شرطی گفت به این شرط حاضره زنم بشه که هر کاری کرد من عصبانی نشم و دلیلشو ازش نپرسه. قبول کردی؟ آره قبول کردم چون دوستش داشتم بهش قول دادم هیچ وقت به خاطر کاراش عصبانی نشم و دلیلشو ازش نپرسم خب بعد ما با هم ازدواج کردیم و مدتی بعد صاحب یه دختر شدیم اما اما زنم دخترمونو انداخت داخل آتیش. واقعا آره داشتم میسوختم. اما چون قول داده بودم نمیتونستم ازش سؤالی بکنم مدتی بعدم خدا به ما یه پسر خوشگل داد اما همسرم اونم برداشت و با خودش به دریا برد و انداختش داخل دریا ای بابا برای چی کار رو کرد؟ منم این بار دیگه طاقت نیاوردم و سرش داد زدم و بهش اعتراض کردم. همسرم گفت دیدی نتونستی به قول عمل کنی؟ آخه برای چیم بلا رو سر بچه آورد منم هم همین سوال رو ازش پرسیدم. اما مدتی بعد دوتا بچه رو حاضر کرد و گفت من دوتا خواهر دارم. یکی آب یکی آدخش. بچه ها و به اونا سفردم تا بزرگشون کنن حالا که زیر قولت زدی و ازم دلیل کارانو پرسیدی دیگه نه زن داری و نه بچه من و دختر و پسرمون تبدیل به کبوتر میشیم و میریم روی منارههای مسجد عجب هم حکایتی؟ آره حکایت عجیبیه این کبوتری که هر روز بهش سول میزنم. همسرمه اون دوتاییم هم که روی مناره هستن اونا بچه من. حالا منم و این کبوترایی که هر روز به دیدنشون عادت کردم خود خب چرا ازش نمیخوای دوباره تبدیل به آدم ایزاد بشه؟ ازش خواستم اما قبول نکرد. گفت چون زیر قلم زدم دیگه به من اعتماد نداره بله، مرد مسافر اینم رازی که دلت میخواست سر از کارش در بیاری. پادشاه راز مرد جوان هم شنید با اسب پیرمرد به طرف شهر خودشون به راه افتاد چون برای شنیدن راز زن نیکوکار عجله داشت یه راست رفت منزل زن نیکوکار تا راز مرد جوانو بگی و راز زن و بشنوه خب زن نیکوکار راز مرد جوانی که تو مسجد نشسته بود مو به مو برات تعریف کردم؟ <تصفيق> رازی که به خاطر شنیدنش مجبور شدم تا به شهری برم که پشت کوه هاست رفتم تا راز اون پیرمرد رو بفهمم و برای مرد جوان تعریف کنم تا مرد جوانم رازش رو به من بگم بسیار خوب جناب پادشاه این راز درست همون رازیه که تو دل مرد جوان بود میخواستم مطمئن بشم که تا اونجا رفتین و سر از کار مرد جوان در حالا که رازو گفتین منم به قولم عمل میکنم و رازمو به شما میگم بفرمایید زر و پا گوشم من زن مرد بازرگانی بودم که در کارش رقیبی نداشت و کسب و کارش پر رونق بود از برکت اون مال و منال خونه بزرگی داشتیم که پر از اتاق بود و من میتونستم به هر اتاقی که دلم میخواست برم بجوز اتاقی که درش همیشه قفل اون چه اتاقی بود؟ اون اتاق اتاق اختصاصی شوهرم بود که جز خودش هیچکس اجازه نداشت پاشه توش بذاره. همیشه آرزو میکردم یه روزی برسه که بتونم سر از کار اون اتاق در بیارم و بتونم وارد اونجا بشم. تا اینکه یه روز سر ظهر شوهرم به خونه اومد و گفت که حالش خوب نیست. کمی دارو خورد و به خواب عمیق فرو رفت. مم. منم وسوسه شدم و از فرصت استفاده کردم و کلید اتاقو از توی جیبش برداشتم و رفتم در اتاقو باز کردم خوه چی تو اتاق بود؟ شاید باورتون نشه اما اون اتاق پر بود از گلوله های تلا گلوله های تلا؟ بله فکرشو بکنین یه اتاق پر از تلا شوهرتون همه تلا رو از کجا پیدا کرده بود؟ منم از اینکه اون همه طلا رو یه جا می دیدم، تعجب کردم درسته که شوهرم بازرگان بود و درآمد خوبی داشت. اما درآمدش نمیتونست اون قدری باشه که یه اتاق پر از گلوله های طلا داشته باشه. تا اینکه با خودم عهد کردم برم دنبال راز اون همه طلا. خب تونستی بفهمی اون همه طلا از کجا اومده بود؟ بله. البته خیلی هم ساده نبود. ولی بالاخره سر سر درآوردم خب حقیقت اینه که شوهر من اون همه مال و منالو از راه حرام به دست آورده بود مطمئنی؟ بله مطمئنم اینو زمانی فهمیدم که دیدم هر ازگاه یکی از رعیتها به خونه ما میاد و از شوهرم شکایت میکنه و از اینکه که مال و رو به زور بالا کشیده گلمنده و سجه میزنه خوب. خب چرا بهش نگفتی نباید با پول اون رعیت ها طلا بخره و تو اتاق جمع کنه باید بهش نهیب میزدی که اون پولا حرومه بله بهش گفتم صد بار بهش گفتم گفتم این پولا یه روز دامن زندگیمونو میگیره و بدبختمون میکنه اما گوشش به نهیبای من بدهکار نبود شوهرت فهمید که تو وارد اون اتاق شدی؟ بله با اینکه میترسیدم این رازو بهش بگم اما همون روز که به خواب امیق رفته بود وقتی از خواب بیدار شد بهش گفتم که کلیدو از جیبش برداشتم و وارد اتاقش شدم خب چی کار کرد؟ عصبانی شد خیلی هم عصبانی شد اما دیگه فایده ای نداشت من کار خودمو کرده بودم و چیزی رو که نباید میدیدم دیده بودم خب ب... بعد شوهرت چه کار کرد؟ شوهرم تهدیدم کرد که حق ندارم این رازی به کسی بگم گفت این پولا حق خودشه و اونا رو با زحمت به دست آورده اما من دلم به حال اون همه رئیس میسوخت. باید براشون کاری میکردم. تا اینکه تا اینکه بالاخره اون پولا و اون حق خوریا دامن شوهرم رو گرفت و یه روز که با اسبش رفته بود بیرون اسبش وحشی شد و به تاخت رفت. طوری که شوهرم نتونست مهارش کنه بعدم اونو بالای کوهی برد و انداخت توی دره شوهرم دردم جون داد و از دنیا رفت خب هیچی دیگه بعد از مرگ شوهرم منم با خودم عهد کردم که هر طور شده اون همه طلا رو به مردم فقیر ببخشم و برای شوهرم خیرات کنم تا روحش در اون دنیا آرامش داشته باشه عجب حکایتی بله حکایت عجیبیه ولی واقعیه خب جناب پادشاه حالا که سر از راز من در آوردین میخوایم چیکار کنین هیچی به دربار میرم و خدا رو شکر میکنم که زن فداکاری مثل تو تو این سرزمین زندگی میکنه که هوای فقرها رو داره خب اگه اجازه بدید من به قصر برمیگردم کردم قدم رنجی کردیم جناب پادشاه فقط ازتون یه خواهشی دارم چه خواهشی؟ اینکه این راز فقط بین من و شما بمونه آه خیالتون راحت جز ما دو نفر هیچ کس از این راز با خبر نمیشه خب من دیگه باید برم خدا حافظ خیر پیش جناب پادشاه به سلامت شاه به دربار برگشت حالا اون مطمئن شده بود که زن نیکوکار از اون سخاوتمندتره و بیشتر از اون به فقرا کمک میکنه اون دیگه دلش میخواست برای زن نیکوکار کاری بکنه و زندگی اونو تغییر بده تا اینکه فکری به ذهنش رسید سر برم حواسم هست از وقتی که از سفر برگشتین مدام تو فکرین چیزی ذهنتون رو مشغول کرده؟ نه مباشر نه ولی از اون موقع تا حالا بیشتر تو فکرین و کمتر حرف میزنین سر برم خب حقیقت اینه که من به دیدن اون زن نیکوکار رفتم همون که مرد فقیر گفته بود بله بله میدونم من اون زنو از نزدیک دیدم خب به واقع زن خیرتمند و نیکوکاریه خب اینکه خیلی خوبه سرورم آره خیلی خوبه کاشت اداد اینجور آدم ها تو این سرزمین بیشتر از این بود همین موضوع فکرتون رو درگیر کرده؟ نه ما باشه نه. اون زن با اینکه که زیادی داره اما تنهاست امروز خواستم به دیدنم بیای تا بهت پیشنهادی بدم. ام سر برم تو سالهاست همسر تو از دست دادی و تنها زندگی میکنیم بله مرد با خدا و درستکاری هستیم میخواستم بهت پیشنهاد بدم که به کاری اون زن نیک و کار بری تا اگه قبول کرد با هم ازدواج کنید خب ب... من... نه نه نه نه نمیخوام همین الان و همین لحظه جوابمو بدی به پیشنهادم خوب فکر کن بعد اگر راضی بودی برای خواستگاری از اون اقدام کن خودمم میرم و اون زن و خاص کاری میکنم ازتون ممنونم سربرم از اینکه به فکر من و زندگی من هستین ممنونم چشمه <تصفح> <تصفح> <تصفح> چشم, چشم، به زودی نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنم <تصفح> امیدوارم روز بعد مباشر پیش پادشاه رفت و به اون گفت که فکراشو کرده و حاضر با زن نیکوکار ازدواج کنه پادشاه هم همراه خدم و حشم زیاد به خاستگاری زن نیکوکار رفت و زن را برای مباشر خواستگاری کرد زن هم جواب مثبت داد و مراسم ازدواج زن نیکوکار و مباشر در قصر برگزار شد بعد هم زن نیکوکار رو مباشر به خونه خودشون رفتن و زندگی شیرینی یا شروع کردن بله دوستان این هم از افسانه پادشاه و زن نیکوکار که از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اختباس شده و به ما خوشخلقی، وفای به عهد و کسب مال حلال را گوستت می کند افسانه پادشاه و زن نیکوکار تنظیم برای رادیو از صهیلا خدا دادی بازیگران به ترتیب اجرا محروخ افسلی احمد گنجی محمد یگانه امیر فرهانیان محمد رضا قلمبر ماندانا محسنی نورالدین جوادیان مهدی تماسبی کارگردان ایوب آقاخانی افکتور نازنین حسن‌پور صدا حیدر صفدری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی اند افسانه زندگیتون دل و مانا تا افسانه دیگر بتروت